بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وعلى سيدنا عسود الله وعاله القيامين طاحلين المعصومين من العزو دائمة على الله داره مشاعين اللهم افردان و از سلطن این که اینکه وارد دست بود خبر تونه کلی در زنیای اسلام بشیم مسئله دیرو از زمان مسئول الله اونچه که شده بحث شده و دوران صحابه و کارهایی که افتدا شد که بعدها پا شد به این مسئله حجید فرگودی خبر این مطالب ریشههاش باد روشن بشه تا ببینیم چطور مطلب ته کجا ممتهی شد ما مطالبی رو در این جهل عرز کردیم به امور اول دوم سون چهار و چار چیشان و پنجم رسید شیشم رسید یکی از ین اموری که دیروز گفته شد امروز یک توضیح بیشتری راجهب او بدن دیروز عرز کردیم که, که بعداز زمان دومی صحبت این شد که صحبت رسول الله جمعایی بشید صحبتش مفسد شد و عرض کردیم در همین این رسالتش مفسد که این مسئله رو خود این شخصه دوره مطرح کرد و همین رو به اومدین سلام بایده که اصلاح داشتن تدیم بشه و مانع از اختلاف بشه و منشأ منشه استفاده های بندی از این مصدر دوباره مهمه هشی. یعنی که پاوستانه که سادن مصدر دوباره بود بشه و حرف کردیم که خود عمر با این فکر مخالفت کرد و این بود که این شبیه میراس های دینی جمود میشه چیزی شبیه میشه در مقابله خود توراق قرار میکرم اما بر خود من نیست صاحبان نوازی اینجور تقرار خیلی هنوز روشن روشن نیست که چه نکته‌ای ای بوده که جواهی این کار گرفته بشه خب برای فرسه میشن بسه آیت محفظ ما چه کتابی نوشته میشه که سننه پیهن بردار باشه احتمال اینکه این, این کتاب خلق بشه با قرآن از احتمال وجود ندازه بود خود صحابه در درزیر و برخواه در مورد بخواه همه بین این دوتا خود یهودیا بین تو را و میشناقه ازشن اصولا اگر تمام صحابه جنب میشدن به مهد فرهی به ترهیر اون شخص مثل میشنا نیزن باید از حالا از جهات بیان و تبدیر دیدن به احکام و خصوصیات با برنان مثلا فرد میکنه حتی از لحاظ تبدیر اگردیش ها حتی هم با برنان میکنه اینجای نیست کلام برنان کلام اداری است که هیچ بشری به اصطلاح این بزرستی رو نداره که شبیه اون کلام بیار. همین مرمون سید رزی کتاب داره مجازات قرآن مجاز که مجاز داره کتاب پروه ها طبیعی هستید داره در خیلی از جهاز همین نهروه به صحبت داره محطمه داره خب یک عدیب فوقعاده ایست مرمون بسیار بدی داره حتی گفتش که اشعر هر می کنه گفتش که اشعر بنیخاشه مرد مطمئنی نظامن مرمومه سهی درستی هفتاز سهی درستان هم از افراد که داره بسیار سنگی و بسیار علمی و ادبی و غیل مرمومه الوزی لیکن تو همین نفر شما خوش بشه که بکنی که به به سمکه هر در و یه این باید نفر بلاده شما بهشون هر نفر بلاده گفته شدهش عربازش عربازم فرمون بخونه نفضل بارم تو خود نفضل بارمه یک فرم یا آیر میان باز اون آیر باز نفضل بارمه فرمون تو یه آیه باز حس میکنه که باز کلام همه و معمولی در محوامل ها که اینجا سپاشیم این احتمال که اشتباه بشه دو کتاب الله اصلا امکان نداره جای احتمال نیست. خبا آیا فکر میکرده که خیلی نمشن این رو میشنه ها به رسول الله برگرده و بر این دو دو مسلمات بود که در حالت به بود یه میخواست بیشون برگرده نمیدونم. نه؟ نمیدونم. بود نمیدونم نمیدونم دقیقا در ذهن او چه که گروه این کار رو گرفت و به بول بر خودش رو میشنه درشون نشد استحافتون اصطلاح ما به فایسی روز بخیر بگیم علم و نوشته نشد لکن این نوشتن معدن نوشتن اون واقعیت بود که سنن رسول الله مصدر دوبون تشریعن که از وینه او گرده خبی واضعیتی بود از کردیم با مجموعه اموری رو که اصطلاحا بود که سنن میگیم اونجایی که از به ذهن من نیاد تو مکه نداریم تو مکه یا و از اولی که پیمان مدینه آمدن و خب طبعا حالت در حکومتی هست چون مدین بگه خدا کسی ایشان بود و ایشان با اونان حاشم در مدین محضر بودن از همون لده برود بعض از خواهرها رو به عنوان درشتا انجام دادن عرض کردن معاهد نامه یک اهنامه ایست بین پیغمبر و یهود که همون ساله اول هیشوته این احنامه دو در عده از مساقه را آمده که مساقه از کتاب از هماری مساقه از سرم اخیران یکی اینو از مساشت مختلف جمعاوری کرده شماره گذاری کرده 52 دو ماه اینجور دو بنده که پیانبر با یهود قرارداد داد بستن که مثلا یهودی خب این اولین کاری که ما خبر داریم پیانبر اکتر نگیز دارن راکب بسامون چی که اطلاحاً ما سنن در ما هم همین سنن رو پیانبر انجام داد، در این حدود یا ده سالی که کم از یاد ده در مدین تشیف داشتن در سال اول سال 11 زمان کمتر از 11 سال رو در مدینه تشیف داشتن مطالبی رو با ارمان سنن برار بودن و به این مسلمی این ها با ارمان سنن شد البته این سنن هم زمان های مختلفی شد و هم به شده های مختلف و بین سلمان ها با خونتر دوم، خونتر دوم و آران خونسور بود خونسور دوم تشریع اسلامی به و تردیزا آران موفر الله و سلمان نمی رو در زین حاضر که یه در سوران ما عقد کردیم اونچه که ما مجموعاً از سوران فیران یکیش در سامور واجبات که غالباً سوران فیران برد تدین و تحسیم داره حسن یعنی زیبایی می کنه. مثلا در قرآن روبرشا و که این اصلو بود در قرآن بود، اما هیچه ذکری گفته بشه مثلا حتی در قرآن داره که در حال روکو قرآن نکنه در حال پیان قرآن در حال لایقور قرآن لایقور قرآن این خصوصی هست و این حسن که به چنده این یه قسمت هرسانه پیغمدر که یه نیست خودش مستقل ده. مثلا یه سیلی بود سیلی بود سیلی محضور یا محضور رو در آن رو هر بزن ها خب یه سیلی بود که تو ایان آبی بود که تو ایان بها جایی میشد و دیگه اونقدر میشد دو ماستم و افرادی در راه این آب مزاره ای کرده ده. پیغمبر این قرار داد که هر مزرعه این بالا اول سیار بشه بعد آگه مزرعه دوم سیار بشه سوم، سی خود جوز سوانه فیغنبرون الان من تو خیلی از دفعه از بالا که آمیان این جوزه سوانه فیغنبرون در جنگ خیبر در فتح خیبر مسلمان ها خود مقانه و قرآن زیادی از خیبر به دست دارن خود چون طبیعی بود برایشون که اولاق و اولاق که نکشن. اولاق رو هم میکشن خوشتشو بکردن بعضی از اون سرانه هم اولاق خوش بود که افرام نکشی اولاق رو نکشی چرا شما به خاطر این که با این اولاق رو هم این قناع رو داریم به مدیه این چون رو دست کنه رو بکنم او سر اختلافی که بگنه ما شیعیان با اهل سنت رو هست اونا این سنت رو دایمی گرفتن مثلا نها ا این با جمع جمعه اما یعنی اهلی در معاونه وحشی ما در زباده به اولاه و بخشی میم برخن چون برخن این تحقیلی که در اینجا شد طلاق اولاه شد اولاه احلی به اصطلاق نه ما انگاهون همه رو اونا سنن پیغمبر رو شده که پیغامر در تحلیم فرد باید خدا تحلیم کنه. این یک مطلب بود. برای آز معامل که این موقت بود این تحلیم دائمی نبوده این یه مشکل بود در فکر خیبه چون پیغای مانای اولاقا این نیست که ما غرم آقای بود این مدینه ببریم پس این تحلیم دائمی نبوده این اختلاف بیز مصمون ها بود این چه ما در هم فهرم برکنم صدر این سنند همه یک جا و نامده نبود هیه تدریجی بود مثلا تا سال 15 همه اجرت مبعض تا سال 15 همه از مبعض پیغمبر نماز ها درکتی بود از سال 15 همه پیغمبر درکت اضافه برمولن به زمرو پس رو اشان یک اضافه این مشت به نماد را هفته که از در, کرد. از او در کرد. این رو دوست سنن به نماد استادم میگم. هستند ولی این صنعت به در واجبات بیشتر وارونه مکمل و محسن و مثلا اینکه زیبا می‌آمد. اما در مس در محرمات ما صنعت در این در, محباز. در, محباز. در, محباز. در محباز. در رواز اده که خداوند شراب انگوری رو حرام کرد پیغمبر هر مسکل رو حرام کردن ر مسل یا مثلا اینکه خداوند مثلا خصوص فر کنید لحم اما پیغمبر مثلا حیوانات دیگه هم اضافه کردن یا در باب اصطلاح انواع گوشت انواع محرمات دیگری که هست خیلی از ینها دو سرن پیغمبر یا مثلا خداوند روایی رو که حرام کرد روای نصیعه بود مثلا تا دو بعد سدو بیست ب پیمبر روای نقل رو هم حرام کرد ده کیلو رنج در به دوازده یلو رج ن ان و پیمبر حرامن مبر پس بنابر این سرعن که مقدار در ضمن اعمال دیگری بود در باچبات به بود در محرمات هم توسعه بود شاه قدیری در راه میگذرد که امر اضافه این توضیحات هم صادرا درباره حقیقت صورا هستند. بعد از آن ابتداهن بود این دو صورا بعد از جام امور زندگی مصالح بود انگشتگیری میشه چیزی خوش در تعریف گوشتش و که می پوشه اصلی که از هم جدا نمی که؟ چه این مجموعه ای از سنن در ضدیلی پیغمبر وجود داشت اما بعضی هاش رو تأکید کرده بود که زمد رو سمت بکنیم در قبل از حجات و ردا پیغمبر بکن خود و همین مناسک چون مناسکی که در هر آنزان مخاربت بود مناسکی بود که اصلش مال از تلویم بود جامعی یا حجمی آمدن مشکلی و اصل اون تفکرات شرکانیشون یعنی از مدازر حجی رو خراب کرده بودن تبقیه بایات ما حج بر همه ادیان واجب بود یعنی بر مسیحی بر یهودی بر تمام بشن اقصاص رداش به بکن اونا یه اونایی که مذهبی بودن یهودی یا مسیحی بودن حجی نمی آمدن به همس مشکی می آمدن وقتا بیاتا مشکی پدیده های حجیشون یواشواش خیلی شکل شکل گرفت با خودش مثلا دیگه بوتها هم روزه 360 بوت هم عورده بودن بعد دیگه در کرده این دقیقا با اون اهداف کلی حج فهم میکرد این یک دو بعد همه همه برادش رو همیراتی تو هشت بدن اضافات رو بکنن این اضافات توی اصل تشریعه هم نبود مثلا دیگه دو اشاری کردم از توی اولایی وقتی که آمدن مسجد مکه رو به حساب کرده رو برا کردن به ریعتای راهیم و یه حدودی برای حرم گذاشتن کابلوازاری که لولوی بود و امروزی بود یه حدودی برای حرم گذاشتن که این حدود حرم مختلفه بعضیه هاش مثل این خیلی نزدیکه بعضیه هاش که دوره به نظرم دورترشون چی باشه طرف طایف چیه بله جهانه یا جهانه به ترشی دو دن ظاهرا از همش گفته. اون باشه حدود 20 بیسمی به سبیسمای لاله میگه بیسمی دا فصل داشته دا میشه. تن این سه می فصل داشته. این یک تن این از همش نزدیکتر و زنجه از همش گفته. یه روز که ارکان شمیزی بود یا حدیثیه اون نه اون. بعد ارکانو بیس کی این حدود ترمه 6 هسته یعنی حدود, فصفه، حد فصفه، فصفه. یعنی حدود هر نزدیک 37 کیلومتر و از همه دورتر اون جهران هست ظاهران الامان بولیه اگه بزن که فرما فرمه خطیقا اضافه بر حرمی که از سبراهیم قرار دادن میغا قرار دادن میغا سیگه دوره از این جهرانه ای که حدود 55 کیلومتر, کیلومتر. است اما دو طریق خود زورهایی فریکه از نظری که مغزیمو نزدیک 45 کیلومتر یا 56 کیلومتر تا نصفش چه یعنی اون چیزی که هست ادراکیم بود فریب از فصل دورتری طریق لباس اقام دستور لباس اقام بگوشه که موفقیت باشه همون طرف که ابران تصورشون میگن نزدیکی باشه یا اون طرف یا لاملا نه اگه طرف جهبانشی ها طرف طائف میخواستش که مرد قرمان منازر مقال مهجا گرم میشون اون باز مثلا به مکه نزدیکتره و خود حالا خود مثلا جه فلم چیزی در حدود به اسطلاح 20 خورده ای کلومتر کمتر در حالا الان تقدیرش توزیه نمیست نه کنار 550 تا این با اینکه مثلا جوخه ما نسبتا نزدیکتر تا زم حریشه دقت بکنه حدود مراکتی که جعل ما شده ما خیلی از حدود حرم دورتر قرار میکنیم این رو اصطلاحاً سنن نبی میگفتن در مقابل ما و زم از ابراهیم ascii حدود الحرم داشتین که از ابراهیم قرارداد یک سنن رسول الله دفتیم که مواقعی قرار داد پیغمبر اکنه این کار کار جهد رسول الله بود مثلا در حجه اولیمی اگر محرم میشدن یک تا زده و مبوط تمام اون اعمال رو انجام دادن از احرام درده میارونن پیغمبر اکنه که از سانشو میشد که اگر احرام برای حجه سمت توبستی شما رو انجام دادن از احرام در بیاییم این جزو سنه پیغمبر است اید روند نبود. این مطلب نه از روند نبود، اما چطور؟ یه ای درجه چی کردیم؟ با کشتن قربانی، با دادن قربانی از اخراج در بید. این باز نبود. در همین ساله بودی بیه، شما مشکی نگویید نگی پناه، هم بودی بیه؟ اذن نهند بودی بیه، چون حدودی کرد سعی این ماه ها تلطباز رو ای با تشتیف سعیش بدون تشتیف آگه از که به اون جا شده چون به یعنی به اصلا مرتبه مثل ترپه مانند خوده ای بیه یعنی ترپه مثل مرتبه مانندی ملندیه چیز مانند مانندی اینطوری لفظه همین در زبان عربی احضب به کسیم گوش داره گوش پشت می دارم پشتش حضبه میگن یه جایی که مرتفه از این باشه حضبه میگن حضبه یه مسرده رو اون کنم نداره من ندار من به میشه اون تشریف نداره به لحظه کتابت هم تشریف الان که به ما خب هزار نفر هر حضبه یه پیغمبر عشان. پیغمبر کنم که در گرفتن گذرن ببشه از احوام گرد بینیم گذرن این نمیشه زمان بود که احرام بینا و سنت که احرام مل ائهال ملان نتوخ بذیت و ما این خارق مکهی چطور از ائهال دربیم که پیغمبر نرخ میشن داره که وارد شه میشن که بود مسلمان میباشند شون نرخ میشن کی نه حسنی بیشتر در بین ائهال دربیم دربیم هم مسلمانه که اول خودتون دربیم فریاد بیانی پیغمبر نداره ائهال دخمه این آش بود که تدریجا قرار داده شد. و خود همینجا یه هم نوکیگلاتیتی نکرده که منم هم هنوز من شوکه دارم خودم هم برای واضح نیست آینانی شرکت کردشون ما را چیکرده که این مغازه رو کی برا هم داد؟ همون سالی لجاتو بذار سال دهم یا قبل نبود لجاتو بذاره چون ظاهرا این صاری شون که که رفتن تا اونجا اونجا موفق میشدن اینو خود خودتی زولفیه محرم شد سال دهم با هدیه یا تو خودت هدیه مسالمه میشود؟ الان که ما پس لفت بکنید این مجموعه وقت در خصوص هجت رو بذار پیغمت فرمونن خود و همی مناسک کنند. یعنی اجمالا از اول خبر دادن که من سننی رو خواهم داشت. این قصه. از همون اول خواستند که مسلمان ها این سنن رو زبط بکنن خود و همی مناسک اکنم نقطه مشکل کجا سا که میخوانی حتی تو خودوانمی مناسقه کن باز و سلمون ها این حمد نکردن که این قصه رو بنویسند در میکنم یعنی همین خودوانمی و کن و این که چکار کردن باز بازم این دوستات خبر وارد هست متفق بشیم و این که پیغمم خودوانمی مناسقه کن ماها عادت اگر بودیم سعی کردیم مثلا افراد یه پیغمبر باشن تمام این خصوصی هست هفته بکنن دیگه الان ما حجت الودا رو در عنوان اسلامی شده کار به شیعیش نداریم در عنوان اسلامیش در صحیح مسلم داریم چند سفر مفصل دیگه مفصل که از مفصل روایات حج اهل سنت همینه که امام صادق از امام باقر از جابر نمزلا خصوصیات حجت الودا رو نمیدن مفصلتن یه حدیث اهل سنن که معیار کتاب هر هشتیش هست که یکی از معیارهای کتاب هست همین حدیث مفصل است بخاری نیورده اما مسلم ارده امام صادق از امام بادر از جابر نبدالله عزیز سادیش ما رفت این خدمت قیمبر در حدیث الوزار و اینطور این خالص خارج اینطور این کار را همه رو همه روی ایتی که ایشان و اون اختلافاتی که بعدها پیدا شد بین مسلمان ها در حقیقت در خود اون عمل خارجی نبود مثلا عمل روز جمعه نماز را از از مدینه را افتاد به شب و زروریپه خواهیدن شب شنبه روز شنبه هم بعد از زر نماز را از سخوندن از زروریپه را افتادن رو. را یعنی نماز و خوندن و به احسا احرام بستن این که مثلا قبل از احرام نماز لازم لازم این نماز واجب کافی. این دیگه هم اینجا شروع میشه اخلاق مسلمان ها در مسئله کارهایی که پیغمبر در راه انجام دادن سعی کرده جابرن عبدالله انصاری بیان بکنه که در این حدیث نرشه شد اما نقطه رو دقیق بکنید من خواهد این نقطه اما تدویم نشد این مشکل کار این حدیث همونجا خب وقتی پیغمبر رو خود رو اندیمان که این خوب بود که مثلا به حساب ظاهر مسمونات یعنی این رو سبت و زبت دیگه این نشد ولی بله بعضها در قرن دوم نقل شد شد خبر واحد <تصفح> اگر نوشتاری بود نیازی به خبر واحد بودن نبود که نشد در زمان عمر از, از, از, از این بحث مطرح شد جمعه سنم که ایشون مخالفت کرد یه عنوان که این مشنا مشنا میشه فکر مشنایی که یعوزی ها که المصنای توراته اگر این بشه ما هم المسنای قرآن پیدا میکنه، و این خط میشه با کتاب الله البته احتمالا یه نقشی هم حدیث ابو سعیل خدری داشت که من که طبعا یه غیر قرآن تریم بگم البته اون احتمالی که من میدم اگر ابو سعیل اشتران نکرده باشه شبگاه یه وقت پیغمه رکتم یه آیه از قرآن میخوندن یه چیزی در تفسیرش میفرمدن ای فلا وقت بعضی از مسلمان هاییان نوشته بزن پیغمه این یعنی اونی که در حین خوندن قرآن اگه چیزی با من تصفیرون رو پاک کنون این وقتی به دوشتن حدیث به رسولانه آقا به ذهن من این کار میگم این کار نشد زمان همی رو با من این ارز کردیم ایشون زمان همه این کار انجام شد با که میگم چون کوفه اصلا کوفه تحصیل شده در خادگان عقشی بود شهر شهری رو این که میگن کوفه یا اهل وخانیست اصلا کوفه اولش اینطوری تحصیل شد چون تحصیل کوفه سال 17 دیگه نوری ترسیل اومده و اصلا خادگان بود اصلا فلسکفه یک کوفه این بود که یک شهری واسه باشه بین مدینه بین ایران چون جبهه و ایران بود برای فرق ایران که مثلا نیروها از مدینه بیان و کوفه از کوفه برند به جربه، همچی از بود جبهه برگرن مریض ها بر مریض ها کوفه از کوفه برن بزن به مدینه یعنی یک پادگان ارتشی بود اصلا وجود کوفه یک پادگان ارتشی بود و مبزار زیادی هم از هم و بیشترشون نیوه های بودن از یمن آمده بودن و به شکل حتی اشاقیرشم به این شکل بود مثلا یه موشه کنوس بری کلا اون طرف دیستا خیمه بری کنم و خیمه و بین ایران تازه فاصله بود یک ای که تدریجا اینو به هر قسمت تخصیل کرد بعدم به چهار و اون مناطق هم با خود خودش تقریبا در اسم داره ساخته رو ساخته ساختش رو شهر اما اون مناطق به اسم خودشون مثلا اینجا ای اینجا ای مثلا اینجا عشقی برین فلا اونجا اینجا عشقی برین مثلا اون کنده که کوفه الان هم اشمع از کوفه در نین طرف رو به نجب همون را دفتراز نین کنده میگن همون زمان هیو کنده رو شکن مثلا هی یعنی کو, کو... این به خاطر همین اسم‌گذاری قدیم که چند در اینجا ثابت بوده اکثر اگر اوماد باشه این کتاب بفاسه تطورش عکسش بعدش خیلی فرواذه نباشه اینو ماشینیون در دوره میگم 80 تا 90 سال اون خیلی زحمت کشه دو سفر به کوفه اومده از نزدیک بچند دقیقاً مسجد کوفه اعصاب مسئله همین رو نث کرده اندازه گرفته داره تکی کرده کتابای تاریخ رو نگاه کرده یه نقشه یه اسکوفه در قرن دوم کشیده این ترونه زمان نمو ساده مثلا عشقه کنم فران فرانچه هست عشقه کنم مسجد, مسجد مسجد شکل مسجد تمام اینها رو سعی کرده خودش که بازیابی کنه بازسازی کنه این فضاها ها. و خیلی زحمت کشه انصافه حقا نقالی میکنه به لوی ما سیدم شده از چند سات پیش عربی ترجمه شده اشیدم به فارسی بعد من اولینه نیست من ترجمه شده. این نقشه کوفه رو آنو میخوان در دوم بیانن این باسازی این بد نیست جهاشون معلینه اصلا فدمتون که لذا طبیعت شهر کوفه انسجام شهری نداشت شهر اینطوری این طوری اصلا فرض شما در شهر های میکنید که وقتی به اصطلاح خانی از رئیس مزهج بود که چهار هزار مسلح داشت خب این همه شیعه ای در کوفه بود وقتی هامی رو گرفتن قراره همون اسبابم تجاهل، ولی یه شیعه نه. متأسفم که فهمم میشه که قرآن خبر بود، اشعری ماطو و بوتل این غلط تو عله ارهاب بکن. ولی این علاوه بر اساس که عله ارهاب بشه، کیشم این بود، چند تا بودی که جا این بود. یعنی حاضر بودن مثلا برای یه تأثیرشون برن، اما فقط یه رگه تأثیر دیگه‌ای دیگه که شیعه باشه، نمی‌دونن. این حالت بود اون خلاص و مسائل هرشایی دو مرتبه و قبائبی به اینها این زنده شده بود لذا شهر مستربی حساب میشد شهر بود که انسجام نداشت شهری بود که مرض کرد کفیلایوفی اهل کوفه اهل مکانیستن این عدم انتجام بود که تأسیس شهر پیدا در ارتکارداز اونها علاقه که که کتاب هم متأسفانه کنه اینقدر کم و زیاد و نسخه و عوضا و احوالی که که ما هم الان متحقیقیم. و از کتاب به لحاظ تاریخی در دنیای اسلام اولین است که موقعه درده. اگر واقعا محسا ما نمی باشه. ایشون سال سی به کوفه تشکی کردن تا سال چه بود سه سال در کوفه بودن. اگر کتاب واقعا ما نمی باشه. خب کتاب اولی قدم بزرگ فرهنگی حساب میشه مثلا تا سالهای 23 هجری که عمر بود و اجازه تدوین حدیث ها رو صادر میداد نمیرا یه دفعه امیرالمومنین مثلا سال 36 تا 14 سال بعدش واسه 37 14 سال بعد 13 سال بعد ایشون این کتاب رو جمع آوری از کلا مشکل این کتاب از تایید فکر خوبی اما توی روایات ما و توی میراز های ما از زمان طور من ممصاده ببن تقریبا کتاب محجوره الگه هم هنوز خیلی ما واضح نیست حال این لذا این جمع آوری سنن نتونست خیلی تأثیر گذار بشه. این سال سی و تا چهه دیگه باز این سنن وقت بیشتر به ساعت بعد نوشته ها بیشتر به عنوان کلماتی که نحن میکنم تا سال سر هجری سر هجری امروز عبدالعزیز به فکر جمع آوری این سنن افتاد کسی رو پر مدینه اونم شروع کردن به جمع آوری سننستان در وضوی در نماز اینا سر رو سر کردن جمع آوری تنظیم بکنن و نشاء الله تعالی قرصت دیگه که شامد ارز میکنم کمتا نوشته بود از پیران بردسته افتا و مقداریش در درباق امور مالی بود مقداری درباق اصفان و جنایت بود اصفان و جراحت ها و اینا بود و ارز دو نفر اصفاهای اهل سنت دارن که دیگه ی رو مصابی میدونن بقیه رو نصفه میدونن و اندت اساسیش این آن رو برزی منازه صحبت های میکنم نا اینکه خب من این یه بحث موخ بزنم البته اصلی اونجا این بود در اون کتابی که در دربیه بود مال علی بن عمرو نهری این کتاب بسیار مهم بود که هم بعد در بیاد نوشته بیدن مثلا یه روایت داریم امام صادق علیه السلام راوی میگه امام صادق من از حضران برخونی علرش بن عمرو نهری این در صحیفه ابی عبدالله برای نگاه کن این جراحت دیگه جراحت اون جرایحی که چیاری فرسوده نه نمیشه درک کنم من تو زن هست این جراحت چه مقداره گرایش هم امروز سعی در نمی کنه به نظرم که چطور مثل این جرایح خودش میاد اما این فرد نه مامساده از زمانی که تو کتاب اینطور میگه از زمان ساده درست این مرد داشت نسل دوست این سعی رو دکتری کنه این تا زمان امام مامساده هم بود اما که کنسل آماده البته به نظر این ناقصه بعضی برس که این از آن نسخه نیست این سعیفه موجود بود حالا این زمان ماموسازه رو سال 130 این کار رو عمر بن عبود عزیز سال 130 ادهی از ساها افروف حالا ما خواهد شرط بدن میکشه و باید این برای خودم مراجع که دارو کنم ما شد حالا فیلم به نحوه اجماع اینا مشغول جمعوری که عمر تموم شد این نوشته هم موند این نوشه هم, این نوشه هم نشد متاسفانه چون هنوز در ذهن ادی این بود که عمر من کرده از قبلین سنن ما در میان اقوال علمای احل سنن تا تابعین این هم میبینیم که میگفتن نه این عمر نمانداره حاضر نبوده به نه یه عمر بردها کتاب دارن کتاب های تطریقی دارن اما کتابی که تقریبا سنن باشه و روایات باشه یا اضافه برموانه راههایی برای برسوده به باشه تقریبا کتاب محتم مالکه سال سال پنجا در سال سال این کتاب نشته شد موظم این کتاب حدودی هزاره های کمتر محصد و خوردی روایته مقدار ریالشان اجماعات اهل مدینه 300 تا اجماعات اهل مدینه است اینا اعتقاد داشتن با اجماعات اهل مدینه میشه به احکام الاجی رسید خب این کتاب خیلی دیروش مانور دادن خیلی میگن یعنی منصور داونی گفتو کی کتاب دستمون بنویسه رو کعبه آموزشون کنند یا یعنی دستمون تمام شهرها برسسن حتما به این کتاب عمل کنن ببینید اون نقشه فنی رو گوش کنید سال 50 که رکن دوام شریعت که سنال بود نوشته میشه منسوب گیر ببینید به شهرها این شهر یاد بیاره به سال مثلا 30 هجری این سال 150 سال پیش عثمان قران رو چند تا نسخه مختلف از قران رو سوزون سونو یالا زنگورد این چند نسخه از این نوشته شهرها فرستاد یا عثور سلام در این زمینه واشان میشه که مثلا چی بود؟ یعنی در این شریعت مقدسه دو رکنه اساسی بود یکی کتاب بود یکی هم سنتی یکی کتاب بود یکی سنت بود کتاب رو زود مسلمان ها به هم پیچیدن حالا با اختلاق نقلی های پیه من که درماز کتابو کتاب و تنظیم کتاب و شکل تنظیم در زمان کسی در آن بر این شکل داشتند، بی خود میگرد وی بیرده به هر حال زمان و عصوان دیگه این کار تمام شد این دیگه مسلم و مسلم در زمان و عصوان اختلاف دراعت بود اگر این کار تمام شد که الان بعد از این توضیح همین از توضیح مختصر تفسیری جدی و رسج مونده بود چونت نه رفت کرد یعنی رفت دوم دومه اسلام هم بل این که ما به اسم داریم نه صحیح یا واقعه یا ممکنه توش باشه در روخه بین سال سی و تا چههه بود خوبه دیگه یعنی که چون زمان آمد مثلا سال 20. نشد این کار نشد یه 15 سال بعد این کار انجام شد این یعنی لاحظه بود دیالا چی شد که اینجا شما امهان این هم نوشته شد به انقام نرد شد نقلهای متعددی شد کتاب موجود بود تا قرم شارم کتابش موجود بود اما حالا اون حقیقتش چی بود اون یک مقداری شاید خالی از دنها نباشه بار دیگه در زمان سال سرد این کار شد راجب سنت که عمر نردالعزیز این تدویل انجام داد. این هم با پیش آمان داره این هم به هم گفت پس در حقیقت به تو رسمی سال 150 شد با نوشتن کتاب الموقع ماله که دیگه شتا نمه خیرم در اون چی که بود جمع شد. حالا ببینید اگر این کار زمان همون دومی می شد و اولی می و اون توصیه همی رو اونی انجام می شما دیگه 150 سال 140 سال, سال, سال تر قصه بود دیگه این تفاوت قصه رو حساب بکنید 150 سال تفاوت سالوسی ساول سال 20 میلادی ساول سال تفاوت داشته بوده که لا اقل مثلا 4 تا حساب میشه 5 تا حساب میشه یک تفاوت زمانی نسبتاً زیادی وجود داره نه اینکه یک تفاوت کم باشه خب اینم راجع به یک تاریخ هجری حسابات سنت فبعضی که در دنیای اسلام ببینید دقت بکنید من در دنیای اسلام میگم اون چیزی که بین مسلمان مسلمان‌ها مطرح بود نه خصوص دنیای این هم مطلبی بود که دیروز اجباراً گفتم امروز بیشتر بازش شرعی مطلب دیگری هم مطلبی بود مطلب ششم و, و همین مجله تل‌ها در خلال بحثش اشاره کرده. زمان خود اهل سنت می قران ن... تو اورا نوشته بود اما اوراقش پراکنده بود ادعا شنگی نید ادعا از سنن ادخان سیوشی رو نگاه کنید بودمون قرآنش نه میکنن که در زمان عمر مثلا مختلف اول قرآن جمع کرد این جمع مراد اون اوراق رو هم گذاشتن دو نه جمعین اصطلاحی ما بعد هم عمر جمع کرد جمع عمر هم این آن اون جمعشونه اصلا با خوش و رو سبه برد برد برد برد برد. نه این جمع نیست جمع اونا مرا فرصای یکی سوری بقره داشت یکی سوری لذا در کسو بحث سنت جمع اینا رو می گفتن کارم توسن ما از صحوق به قصب این اورا در زمان اومد اسم صحوق بود من ارسن چند بار توی زمان پیمون بر دختر دختر اومد حق حصه تا بعد از زنها رو یاد میاد حفصه دختر عمر همین یک کوفی رو برادر بشار شینه بشه چه قصهی سودی عربان صاحب صدا مؤذن مدارس زمانه خوبزی زمانه هرچی این حفصه چون زنهایی که نوشتن بلد. دختر آمد این صحاب رو عمر میشه دخترش حفصه بود بود برادر این چون بگم آید خویی در کتار شنویشن نصف جمع قرآن با عمر نه چی چی قرآن با عمر نسبت نداده این هم که دقت میکنی که علمان ما یه چیزایی میگن که مسادر احناسون از چیز دیگر ایست مثلا برای احناسون در حقامو میخندن مینا چه هرون احناسون اونی که به عمر نسبت داده شده صحفه نه مصحف یعنی مجنوعه اورادیو این عمران خورتیش دوستر خودشته بود جمع نکرده این جمعه اصطلاحی ما رو انجام نداده این زمان عثمان مذهب شد اونا اینطور میکن که عثمان فرسطان خود از هفته اونا به یه یادی؟ هفته و غیرش دقیق میکن اینا صحف بود خودشان هم بران سن. صحف شد اخوانا راستان میگه اگه از مطلبش باشه همون تحبیر به ما معتقلیم که این که بود از این هر این بحث قرآنیشویم انجام از بحث قرآنشه وقتا داده تمام پس اونی که در زمان عمر بود جمع مصحف نبود جمع کردن جمعه تو ما مجموعه اورا رو هم گذاشتن چون مسلمان ها از از مکه می روشتن. نرشتن قرآن از مکه شروع شد تو خب مدینه بیشتر دیگه طرف بیشتر شده و ابتدا افتحابت قرآن از مکه هست و یکی شنگی هم داریم که تصادیت پیش شاند این خط کوفی، اون زمان خط هیری بوده، خط سوریانی این به مکه رسیده بود، یه تصادیت چند تا از این جمعون ها یکی کم عمرد، اونا اسم علیه نبیزم آمین، که ما شنگیت نجا داردن این که و هم قرآن این یک صدر اجتماعی هم داشت خط هیری یا خط سوریانی خط مقدس بود متون دینی رو باشه میرشن. دعا و این رو در خود مکه غالبا اگه می با خط مصند می یک یه خط یمنی بود البته باشه ما شاب کردن طریف مصند شاب مثل خط سوریانی طورات اینها باش می به هیره رسیده بود در هیره بعد توسط شخصی به مکه رسید که بعدها چون این خط در کوفه مشروع شد شد معروف شد به خط کوفی بلا اصلش ریشت خط سوریانیه که خط مقدس بود از همون اول مسلمان ها قرآن رو با, با این خط نوشتن، با خط سوریانی که اون خط هیری میگفتن که بعدها خط کوفی پس اولین نوشته های مختلفی از قرآن موجود بود این نوشته ارز کردم بیشتری کاغذ هس که در اون زمان متعارق بود کاغذا تکشین میاوردن یا از این های مخصوص بوده از مصر بری بشم گفتن ن معروف نه نیشکاف باز میشه روش میشه نوشت ن بر الان هم نوشته های زیادی از قدیم هست قبل از مسیحیت هست در مصر از هر روی بری نوشته شده یک ن نیزاها ره نه خب پس بنابراین این تا اینجا رسیدیم که به صورت صحف نوشته شده بود زمان را یعنی اختلاف شد چه این شد چه دیگه نمیدیم سرد و صحفی ایشون دستور داد که همه را به چه وقت اون صحف را همون قرار رو. اضافه بر اون سوال کردن کسی که آیه سوره ی آیه از سرحان بلده بیاد بگن وقت چون قرآن متن اصلی تشریدی بود برانشون برین شد که در تصویف قرآن به شهادت دو نفر عمل بکنند نه یه خبر ما چیز خبر باید در نوشتن قرآن برانشون دو نفر بگن که ما سمع نارسول الله یک روال آیه این آیه رو میخون یا سمع نارسول الله میتونی پنجد آیه تو توی بقره جا رو یک نفر را قبول نمی کند چی شد؟ چون بعدها بنا شد تو سنت یک نفر قبول کند او خبر واحد بخواب بیشه ای خبر واحد در سقل اشور و در مصبر اول تشریه اسلامی بناشون شد دو نفر باشند شهادت دو نفر گده و از باید المیان کتاب اختی سنت معتقد عبدالله بن مسعود هم خودش رو بالاتر میدونه هم عجب شان یه و با عثمان مخالف بود و مصحفش خیلی اختلاف در این منابع قدیمی شون مواردی از اختلاف عبدالله بن مسعود با این مصحف عثمان فکر نمیکنم درست باشه احتمالاً جعلی باشه یکی در همین دو سوره معوذت قل اعوذ برنا سر اعوذ برها عبدالله مسعود اون جزو قرآن نیست به استثناء این دو سوره در خیلی آیات هم اختلاف دارد چون نمیخواه ما این بحث بشن و به نظر من چیه کلمات احد سنت یک استرابی در این جهر هست قابل هر نیست و سریع افباده هم باشه که این جمع ارآن و مصحف از زمان رسول الله بیهوده این حضر رو به عثمان ما فعلا از این بحث نشیم حالا از سی و سی و سی بود, سی بود،, سی بود، مشکل اول مصدر تشیی حل شد اگر راست باشه که اون وقت مصحف نبود اگر راست باشه و سحف بود و پراکنده بود پس این مشکل 24 ای سال بعد از رخداد حل شد این مشکل تمام شد این مشکل اول حل شد مون مشکل دوم مشکل دوم شونان بود مشکل دوم سنن بود. خب محفوظ این بود که در شریعت مقدس دو رکن اساسی در تشریع کتاب و سنت کتاب و سنت این مشکل رو تا اینجا یک ای چهره های نمودهایی برای حلش مطرح کردیم ان شاء الله یالا بعد وقت چطور اگر خبر خبره در درده نهبسوند یک مکانت خاصی پیدا کرد بیش از اون تفبولی که ما از خبر هنان در خارج داریم اون ما خبر زیاد به موزن و رادیو تلویزیون اما برداشت اونها از خبر غیر ازینه این اینشالا توضیحش هرسان